خب بعد از اینکه که سه نوع تناسخ را دونستیم یعنی تناسخ نامحدود و محدود به صورت نزولی و تناسخ محدود به صورت صعودی، اینجا توضیح و تبین اونها توی صفحه 193 قابل مشاهده هست خدمت شما عرشد که منظور از تناسخ نامحدود و مطلق اینه که نفس همه انسان ها پیوسته در همه زمان ها از بدنی به بدن دیگه منتقل میشن پس از نظر زمان هیچ محدودیتی دیگه توی این بحث انتقال از نظر افراد نیست یعنی شما دائما نفس انسان ها در گذر زمان در واقع وقتی که میمیرن دستخوش انتقال از بدنی به بدن دیگه میشن یعنی شما خدمت شما هر چود دائما این, این چرخه رو شما بینید. اگر معادیم هست در واقع چیز جز بازگشت به این دنیا اون هم به همین صورتی که بهتون گفتم به این صورت نیست یعنی که خدمت شما هر چود نفس همه انسان ها پیوسته در تمام زمان ها از بدنی به بدن دیگه منتقل میشن این خیلی نظریه خطرناک و در واقع نقط مقابل معاد هست در واقع وقتی نگاه میکنیم انگار همه ماها الان هستیم در واقع خدمت شما عرض شود الان ما در این هستیم در واقع یک نفسی نفس پیشینی در بدن ما چی شده؟ در واقع در بدن ما منتقل شده دوباره همین شما این را دنبال کنید در واقع نفوس پیشین و بدن بدن قبل از ما نفوس پیشین با بدن قبل از ما همینجوری این چرخه انتقالی را اینها لحاظ میکنن تناسخ محدود هم به شکل نزولی به این معنیه که هایی که از نظر علم و عمل و حکمت نظری و عملی توی یه سطح والایی قرار گرفتن هنگام مرگ در واقع به این جهان بر نمی گردن. اینها در واقع چون به جهان مجردات و مفارقات از ماده و آثار میپیوندند. دیگه. اینها این دیگه بر نمیگردند. در مقابل افرادی که از جهت حکمت عملی و علمی تو درجه پایین بودند و در واقع تخلیه نفس از رذایل نکردند، اینها برای اینکه به تکامل برسند، خودشون را در قوای نظری و عملی ارتقا ببخشند و به کمال برسند، بار دیگه به دنیا برمیگردند. خدمت شما عرض شود که اینا برمیگردن که به کمال برسن. ا ایشون مطلبی رو تو صفحه 34 اشاره میکنن که تناسخ محدود به شکل نزولی محدود یعنی یه عده خاص دیگه اینم هم به شکل نزولی یعنی حالا دارن میرن یه کاملا دارن میرن آخرت اما اینها چیه یه عده خاص برمیگردن نازل میشن از اون مرتبه که بتونن خودشونا تکمیل کنن تو این نوع تناسخ دو تا محدودیت هست یکی محدودیت از نظر افراد اینه که آقا همه انسان ها به, سر به این سرنوشت تناسخ در واقع دوچار نمیشن یعنی به دنیا نمی نمیگردن افراد کامل بعد از مرگ در واقع به جای برگشت به دنیا به عالم نور و ابدیت ملحق میشن یه مشکل دیگه شم هم در واقع محدودیت دیگه هم از نظر زمان هست یعنی حتی افرادی که برای تکمیل به این جهان برمیگردند خدمت شما عرض شود که هرگز تو این مسیر پیوسته نمیمونند بلکه زمانی که در واقع نقصان های قواه نظری و عملی خودشون رو برطرف کردن مثل انسان‌های کامل این قفص دنیاوی رو در واقع می شکنن و پرواز میکنن به سمت عالم نور خب الان شما این مورد می بینید دیگه این محدودیت هم هست پس پاییند این ها تناسخ رو برای یه دفتونستن دیگه نه همه بعد همون افراده در واقع خدمت شما عرض شود که افرادی که ناقص بودند بعد از اینکه که قوای عملی و نظری خودشون را تکمیل کنند سیر می کنند به سمت عالم نور تناسخ سعودی هم شما وقتی میرید نگاه می کنید بعض از حکمای ما در تقابل با اون حکمت متعالیه ملا صدرا که بس حرکت جوهری را مطرح میکرد یه ده این برداشت اشتباه کردن دیگه از نظر اونها از بین تمام اجسام نبات نباتات استعداد و آمادگی در واقع چیه هست بشری برای دریافت فیز حیات رو دارن مزاج انسانی هم برای دریافت حیات برتر بیش از در واقع نبات شایستگی داره در واقع چون مزاج انسانی شایسته دریافت حیاتیه که مراتب نباتی و حیوانی را پشت سر بگذاره دیگه به همین خاطر به دلیل آمادگی بیشتر خدمت شما عرض شود که بیشتر در نباتات و شایستگی بیشتر در انسان شما می‌بینید که فیض حق تعالی که در واقع همون حیات و نفس هست ابتدا به نبات تعلق می گیره بعد از سیر تکاملی در واقع به مرتبه نزدیک یعنی حیوان که الان در قالب نخل خورما ظاهر میشه آن زمان در واقع به عالم جانوران حیوانات و سپس در واقع تو مرحله تکامل به مرتبه میمون و در یک جهش به انسان تعلق می گیره و در واقع این حرکت ادامه پیدا میکنه که از نازل ترین درجه به مرتبه کامل برسه ببینید شما الان تناسخ سعودی دیگه الان شما نگاه میکنید که خدمت شما عرض شود که ما وقتی میبینیم این بحث خود انسان را که میبینیم فیض حق موجب شده که این در واقع خدمت شما عرض شود که بحث حیات ابتدا به نبات تنلق بگیره بعد به حیوان خدمت شما عرض شود بعد از اون هم به بین حیوانات هم میمون و در انتاب انسان تعلق بگیرد اینم بحث تناسخ سعودی که مطرح شده خب حالا ایشون یه یک بار دیگه توی تناسخ و معاد میبینیم سه نوع در واقع تناسخ را باز با یک تفصیل دیگه مطرح میکنن ایشون میگه که در هر صورت شما وقتی در این نوع تناسخ در واقع دقت کنید میبینید که اعتقاد به تناسخ مطلق در واقع به صورت مطلق و صد درصدی در تقابل و معات هست حالا این وسط همون بحثی که من بهتون گفتم تناسخ محدود به صورت نزولی ما میگیم همه جانبه با معاد مخالفت ندارد تناسخ محدود به صورت سعودی هم یه نظریه فلسفی غیر صحیحه که مخالف با معاد نیست مخالفت ندارد مخالف اون نیست ایشون میگه در تناسخ نزولی همون چیزی که ما گفتیم تناسخ نه همگانیست و نه همیشگی و گروه کامل از روز نخست داره معاد میشن همون بعض که گفتی اینا میرن کاملان میرن در عالم نور ولی طبقه غیر کامل تا مدتی در واقع فاقد معاد که بعد از اینکه خودشون رو به حد کمال رسونن به لاظ قوای نظری و عملی اونها به کاملان ملحق میشن و قیامت اونها برف میشن پس یه مدتی نه چیه بی معاد هستند در حالی که این مقایر بااطقرران هستیه ما به محضی که در واقع روح از جسم مفارق شد جدا شد در واقع چی میشه این وارد عالم برزخ میشیم دیگه بازگشت به دنیا در واقع مطرح نیست توی تناسق سعودی که در واقع نظریه سوم بود اشون میگه کوچکترین منافاتی با آن با معاد نداره فقط میدونید خطاش چیه خطای این نظریه در حقیقت اینه که اینها تکامل رو درست نتونستن تبین کنند سیر تکامل متصله نه منفصل جدا از هم نیست اینه که ما میگیم نفس یه مدت و مرحله خاصی تو عالم نباتات در واقع محبوسه بعد از اون یه مدت به عالم حیوانات منتقل میشه و توی اون محبوس هست بعد در واقع به بدن انسان در واقع منتقل میشه متعلق به بدن انسانی میشود مثل یه مرغ که از قفصی به قفص دیگه میرسه تا به یک مرحله کمالی برسد این شکلی که نیست که اگر ما تو حرکت جوهری دقت میکردیم اینه که خدمت شما عرض شود که تو حرکت جوهری اینگونه مطرح میشد که مراتب کمالی به صورت متصل و به هم پیوسته هست توی حرکت جوهری مطرح می شد دیگه نمانفصل یعنی شما نطفه انسان از دوران جنینی تا زمانی که انسان کامل بشه مرحل نباتی حیوانی را تی کرده و به مرتبه انسانی می رسه بدونه که ما بگیم شما الان نطفه انسانی الان می بینید اینجور نیست که حالا یه زمان بره توی مرحله چی بماند خدمت شما هر طور نبات بعد بره تو عالم حیوانات. بعد بره متعلق به بدن شه. نطفه در واقع تو دوران جنینی متعلق چه انسان هست توی این خدمت شما عرض شد تو این حرکتی که دارد، سیری که دارد این مراحل نباتی حیوانی را طی می‌کنه، طی کرده به مراتب انسانی میرسه دیگه. دیگه اینجا نیست که بریده و جدا باشد دیگه. یعنی شما وقتی نگاه می‌کنید این خدمت شما عرض شد که یعنی ما وقتی که حیات نباتی که هممون داریم مثلا هم که مرتبه پایینه دیگه وقتی در واقع اون جنین در واقع خدمت شما هست شود در رحم مادر هست این مرتبه رو داره مرتبهی بعد کم کم میره روح در اون رو دمیده میشود این درکه رو پیدا میکنه درسته؟ شما تو تو های در واقع میانی و ما سه ماهه پایانی دیگه درک دیگه تقریبا درک رو درک رو رسیده ما نمیگیم کاملا درک رو رسیده است یعنی شما این بحث نباتی حیوانی رو تو اینا میبینید بعد از اون کم کم اون قوا ادراکی به لحاظ نظری و عملی با فرآیند یادگیری و اینها شما میبینید از دوران نونهالی یا نوجوانی یا در خردسالی و نوجوانی, نوجوانی اینا ارتباط پیدا میکنه حالا این وسط توی این حرکت جوهری چی میشه؟ ما توی این حرکت در واقع نفسی که تعلق به بدن داره یه ادمون تکامل پیدا میکنیم یه ادمون در همون حیات حیوانی چیه؟ میمانیم متاسفانه در اسفل و صافلین میمانیم اولایی که کل انعام بل هم ادل اینجوری میشیم دیگه در خشم و شهواتی که در واقع کمال حیوان هست میبینیم توی اون میمانیم خب این بحثی که اینجا بود پس مشکل نظریه تناسخ سعودی رو فهمیدیم چی هست مشکلش اینه که تکامل رو به شکل منفصل دیده و جدا از هم دیده در حالی که تکامل برای انسان چه شکلی هست متصله نه منفصل توی نکته دیگه هم که توی کتاب شما مشاهده می‌کنید تو صفحه 196م نویسند کتاب بهش اشاره می کند بحث تناسخه مطلق و انایت الهی هست خدمت شما عرض شود که نویسنده شاید شما میدید داره تکرار میشه هر بار یک قرار زیرا داره دنبال میکنه این بار ایشون تناسخ مطلق و نزولی یا شما سعودی رو مشاهده میکنید ایشون میخواد در واقع اشکال های عقلی و فلسفی اونها رو مطرح کنم که حالا گوریزی هم به در واقع اون محکمات قرآنی هم میزنه دیگه چرا مقایر با در واقع نقل هست ایشون زیل تناسخ مطلق و انایت الاهی منظور انایت الاهی میخواد این رو طبیعی کنه که این حرف درست نیست دو تا نکته رو یاد آور میشن یکی این که هر زمان که نفوس به صورت همگانی و همیشگی راه تناسخ را بپیمایند دیگر مجالی برای معاد نخواهد بود من این متن را که بعد تبیین کنم در حالی که با توجه به دلایل فلسفی آن یک اصل ضروری و حتمی است و شاید قائلان به نظریه چون به حقیقت معاد پی نبردند راه افسانه زدند و تناسخ را جایگزین معاد ساختند حالا اون دلایلی که تو مقدمه تو همون صفحات ابتدایی این کتاب شما اگر خواستید برید یه زمان ببینید ایشون اشاره میکنه با دلایل ششگانه ضرورت معاد رو وقتی مطرح میکنن میگن یعنی یک چنین بازگشت رو قیاهت معاد نمیدونیم چرا چون که انگیزه معاد منحصر به پاداش و کیفر نیست تا تناسخی که هماهنگ با زندگی پیشین انسان باشد تأمین کننده نه ادله الهی باشد بلکه ضرورت معاد دلایل متعددی دارد که جز با اعتقاد با انتقال انسان و نشعه دیگر تأمین نمی شود ببینید همین شما توی این هندوها و اینها را که مشاهده می کنید توی سرزمین هند که ما می گیم و اصلا شبخاره هند را می گیم ببینید توی خود هند که قائل به تناسخ هستند. ببینید ما اینجوری نمی گیم که آقا این که میبینیم یه سری افراد در واقع خدمت شما خوشبخت و سعادت مند هستن اینا در خدمت شما تو زنگی دیرینشون درستگار و پاکتامن بودن یعنی میبینید همش اینا دومار چی هستن؟ پاداش هستن یعنی این رفاه و آسایشی که آقای علف دارد به خاطر چی بوده؟ به خاطر اینکه که تو زندگی پیشین خودش خودش کار بوده آقای بی که زندگی در واقع فلاکتبار و در واقع دردآوری دارد دلیلش چیه چون که در واقع تو زندگی دیرینش یا آدم چی بوده فاسق و فاجری بوده یعنی همش دنبال پاداش پاداش و, و کیفرن دیگه آیا انگیزه ما فقط کیف پاداش و کیفر هست خیر ببینید ما داریم محدود محدود کنیم. قرار ما عبادت کنیم خدا رو همون سخنی که امام علی داره یه خدا را عبادت میکنن فقط مثل چی؟ مثل تجار ثواب فقط این عبادت احرار چه میشود؟ آیا از روی ترس فقط باشد؟ شما ببینید بخواهی میبیند توی دین ما فقط پاداش و کیفر نیست دیگه معاد دلائل متعددی دارد خدمت شما هر شود که حکم های ما میگن دیگه رسیدن با اون در واقع تکامله هست دیگه تکامل درک اقلانی هست دیگه با اون مرحله میخواه برسه مرحله شهود و تقرب برسه حالا نکته ایشون بحث جالبی رو مطرح میکنن میگن توی نظریه یعنی تناسخ مطلق قدرت حق تعالی محدود به آفریدن انسانهایی بوده که پیوسته در گردونی تحول و دیگرگونی قرار گرفتند گویی قدرت حق تعالی محدود بوده و دیگر انسانی را نمی آفریند و آفریده نخواهد شد مثلا نعوذ بالله خداوند یه تعداد انسان آفریده مثلا شما جمعیت عالم رو ببینیدا جمعیت عالم همین قدره. اینا خدمت شما هر چه میمیرن روح اونها در بدن افراد بعد خودشون منتقل میشن دوباره هی اونا میمیرن روح در بدن افراد بعد از خودشون این زنجیره اینه یعنی شما فرض بگیرید این فقط این تعداد مشخصه ها فقط همین تعداد مشخص رو ما داریم که این منتقل میشن انتقال پیدا میکنن اینگار ما قدرت مطلقه حق تعالی رو اینقدر محدود میکنیم ببینید وقتی درک از توحید نماشه این اتفاق میافته کل یومن ها شان بی معنی میشه دیگه اینجا اینا این درک بسیار خطا رو از معاد دارن و از قدرت حق تعالی دارن دوم این اشکالی که ایشون مطرح میکنه اینه که نفس که از بدنی به بدن دیگه منتقل میشه از دو حالت بیرون نیست باید من خواهش میکنم اینجا رو دقیق گوش بدید مطالب کاملا اقلانی و فلسفی است حالا نفسی که از بدنی به بدن دیگه منتقل میشه از دو تا حالت بیرون نیست یکی اینه که موجود است منتبع و نهفته در ماده دوم است مجرد و پیراسته از جسم و جسمانیات خب این تا فرض دیگه خب در مورد فرض اول که گفتیم موجودی منطبه و نهفته در ماده من این عبارت آیت الله صبحانی را میخونم و بعد توضیح میدم ایشون میگی که تو فرض نخست نفس انسانی حالت عرز یا صور منتبه و منقوش در ماده به خود می گیرد که انتقال آنها از موضوعی به موضوع دیگر محال است زیرا واقعیت عرض و صورت منتبه واقعیت قیام به غیر است حالا اینجا رو دقت کنید و در صورت انتقال نتیجه این می که نفس منتبه در حال انتقال که حال ثومی بدون موضوع بوده و حالت استقلال داشته باشد به عبارت دیگر نفس منتبع در بدن نخست دارای موضوع است و پس از انتقال نیز دارای چنین واقعیت می باشد ببینید الان میگه که شما توی تناسخ مطلقین بود دیگه مثلا آدمه خدمت شما هر شد شخص الف را دقت کنید این آدم خوشبخت بوده درسته؟ حالا وقتی منتقل میشه این نفسش در بدن شخص دیگه ای باز این خوشبختی چی میشه؟ خوشبختی در واقع منتقل شده دیگه پس از انتقال نیز داره چنین واقعیت میباشد سخن در حالت سوم انتقال هست ما مشکلمون توی انتقال سومه. که نتیجه این نظریه این است که در این حالت نفس به طور متصل و منهای موضوع وجود داشته باشد یعنی شما وقتی نگاه می کنید مشکل از اینجا حاصل می شود که شما الان میگید این, این آدم هرچی داشته از عرضیات ها هر چیزی از عرضیات رو داشته منتقل کرده به شخص چیه؟ بعد از خودش دیگه خب این دیگه هرچی داشته دیگه یه جور خالی شده دیگه منتقل کرده به شخص بعدی آیا این میشه به شخص بدتر منتقل شه؟ نه چون این هرچی داشته منتقل کرد به شخص بعد، دیگه شخص دو دیگه شخص الف در واقع چی میشه؟ دیگه چیزی نداره که به شخص سه بده که نتیجه این نظره این است که در این حالت نفس به طور متصل و منهای موضوع وجود داشته باشد و این خود امر غیر ممکن است و در حقیقت اعتقاد به چنین استقلال جمع میان دونقیز است زیرا واقعیت این صورت قیام به غیر است و اگر با این واقعیت وابسته وجود مستقلی داشته باشد و اگر با این واقعیت وابسته وجود مستقلی داشته باشد این همان جمع میان دو نقیز است در آن واحد ببینید فکر کنم شاید با مثال بهتر روشن بشه مطلب شما فرض رو بگیرید مثال من میزنم روح در واقع مثل یه علیاف. حالا ما گفتیم که طبقی چیزی که میگه دیگه روح را شما مثل یه قطرچکان عل... علیاف فرض بگیرید که در واقع اه... اه... چیزی که ما گفتیم دیگه هرچی که قالبی از جسم یعنی عرز بگیره و به قالب دیگه منتقل کنه دیگه جسم اول در واقع مثل یه ظرف پر از رنگ باشه روح در واقع مثل یه الاف فرض بگیرید جسم ال... اوللا یه ظرف پر از رنگ باشه. شما این الیاف را ب... وارد ظرف رنگ شده که میکنید چی میشه رنگ اون رو میگیره. مثلا رنگ سرخی داره به فرض. الیاف را وقتی وارد اون ظرف پر از رنگ سرخ می تمام این عیافه چی میشه؟ رنگ اون رو خب حالا چی میشه؟ حالا این وارد، علیافی که ما به شما گفتیم دیگه علیاف رو ما میخوایم وارد یه ظرف بعدی کنیم که این ظرف چیه؟ ظرف خالیه علیافه چی کار میکنه؟ این علیاف رو وقتی شما وارد ظرف دوم میکنید رنگ را این رنگ سرخ را به ظرف دوم میده پس میده درسته؟ مشخص شد الان به ظرف دوم پس میداد حالا ببینید این علیافه دیگه حالا علیاف را این علیاف که گفتیم روحه شما این هرچی داشت دیگه به ظرف دومی داد دیگه حالا ما میخوایم این علیاف را وارد ظرف سوم کنیم چه اتفاقی میفته؟ هیچ رنگی دیگه نداره خالی از رنگ شده منظور ما رنگ و عرزه ها اینجا عرزیاته هیچ چیزی نداره که به ظرف سومی بده درسته؟ به همین خاطر ما میگیم که نمیتواند من نمیشه در واقع عرز جسم اول رو به جسم چیه به جسم سوم منتقل کنه چون هر چی داشته رو در اختیار جسم دوم قرار داده برای جسم سوم دیگه هیچ موضوعیتی ندارد فکر کنم با این نکته مشخص میشه دیگه یعنی جسم اول که گفتیم مثلا جسم دوم یه ظرف خالیه که روح در واقع وقتی وارد اون شه عرزی را همراه با خودش میاره. هر چی بوده، هرچی از عرزیات بوده را در اختیار اون قرار داده. دیگه هیچ چیز نداره که در اختیار چیه جسم سوم بگذارد. موضوعیتی دیگه نداره. درسته این جمع بین میانه دو نقیز میشه. امیدوارم با این مثال مطلب روشن شده و شبکه که این مثال برای شما تبیین میکنه این مطلب ها. خب، حالا احساس میکنم برای اینکه شما این فایل ها طولانی نشه چون فرض دوم رو هم حالا ما میتونیم الان بگیم اما من نمیخوام حجم مطالب زیاد شه ان شاء الله فرض دوم در واقع تناسخ مطلق یعنی اینه که ما بگیم که خدمت شما عرض شد که موجودی مجرد و پیراسته از جسم و جسمانیت در مورد نفسی که از بدنی به بدن دیگه منتقل شد بگیم این فرضه جاری می شود حالا ما مخویم اونجا اشکالات اونم بگیم انشالله این رو برای جلسه بعد تقدیم خواهیم کرد امیدوارم که مطالب ما مفید فایده واقع شود و همه شما سروران گرامی را ازتون میخوام که هم متن را با دقت بخونید هم فایل های صوتی را با کمال دقت گوش بدید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته